السلام علیکم و رحمت سلام و برخورد ذاتیتها رو تصویم میشه به در قسم ذاتیتی که در موضوع افرامه و که در حفظه متعلق افرامه و ذاتی اگر در رفعه موضوع باشه سر پتخیر در میاره. که ناپلی مونتزیدیت علمشماریه و اگر سر از و اگر در رفعه باشه سر از این دامدن میاره که دیگه نیازی بمنتزیدیت علمشماری نیست وقتی ذاتیات از باب علم خارج میشه محصله نتیجه که میشه بگیریم اینه که تمام احکامی که در باب علماجمالی ثابت میشه به منتزیت میرسه یعنی جزء احکام انوانیه و متغیر و خارج از احکام ثوابت در شریعت تاب مساله و ملاقات ظاهریه و از این قبیل امور در ادامه یه بحثی رو مطرح کردیم در باقیت واحناوین و اقسانش قرار من بعضی درستانه ام اینی که محفوظ در درستانه درستانه گفته بودیم این هم که ایسا درستانه از این نوشتیم ولی اون چیزی که اهمیت داره متقریب به بحث ماست اینه که حضرت اینوان و ذات چیه؟ چون یه محامی تو ذهن هست یکی از اشتالات قوی که در مقام مدزه که ما هم میگیم اگه حدث متببن به ذات نجاست هم به ذات فرشه چه فرد بین این دو تا هست اینم ذاتی اونم ذاتیه این اشتال این قوی اینو خواستیم جواب بدیم که اون روز از و ذات در این همه مباعثی که داریم مطرح بیارم از اول سال پهلا اینه که مضعولات شهر بر دو قسمه بعضی از مضعولات شرقیات محضه بدون هیچ تعبودی ولی قسم دو قومش مضعولات شرقیه هست اون مضعولاتی درش تعبود هست معروف شده به ذاتیات اونهای نیش تحقیدی درش نیست قید از خدا و آمد و نوانی اونها شریعات بید تحقیدی این محسسنش یعنی در قسمت احکام ذاتیه قسمت حجمه که متبقی به ذاته و حدتی متبقی به ذات یا تذکیه که متبقی به ذاته و برایت پدری که متقابل به ذاته و ها یا وقتی که متقابل به ذاته این ذاتیات دارایی تعبد خاصیه که این تعبد رو نجاست و شمارت همثال نداره بنابراین فرق بین حکم اینوانی و حکم ذاتی اینه که در حکم اینوانی تعبدی در تاریست حالی ها توضیح میدیم یا تو 5 شیش صفحه نوشتم بعدی محسلشو دارم میگم ولی در ذاتی یا تأفد در این حاله این ابتدای چیزی ابتدایش دیگه شروع کردیم نوشتین توضیح دادیم نهایتش به کجا میرسه؟ نهایتش به کجا میرسه؟ نهایت فرق بین انوانی و ذاتی <تصفح> <تصفح> که شاید قاعده خیلی از اشکالات و اثباتی رو رف کنه اینه منتهای امر چیه؟ منتهای فرق این ذاتی و انوان چیه محصل اون منتهای امر اینه که در احکام انوانیه شارع حکم رو میگه کاری به موضوع نداره موضوع القاه به عرف میشه به صد میشه به تشخیص مکلف میشه ظاهر میشه هیچ ارتباطی به شاره نداره در وقت هم قاعد میشه به تمام حالا وطن هم به چی میگن؟ هر چی خود تشخیص دادی؟ اول هر چی گفت؟ شاره تعریف خاصی در وطن هر من منباب مثال بعد ذاتی چیه؟ ذاتی به خود میگن که شعاره همها گفتم و موضوع مشخص کردیم هر کجا شعره حکمی رو بگه موضوعش هم مشخص بکنه جز اکام زادیه و وقتی موضوع محدده این در باشه غیر قابل تعدیه غیر قابل الغاهه و از زفیر سایه فوارد جایز نیست و سر از یک تعبط محض در میانه بنابراین تفصیل تعبط بسی شد یه این که هم خود بگفته هم موضوع. غیر معکول الله معانیت داره در نماز این حکمشه موضوعش هم همین حیوانات مشخص در خارج نه که هر چیزی خوردنش بر ما حرام باشه نماز با اون اشکال داشته باشه مثل مال دزدی که انسان تو جیبشه بگیم نماز واقعه چون مال دزدی تو جیبش بوده اونم غیر معکول الله همه. اونم غیر معکوله. معکوله اونم حرمت داره ولی مانعیت نداره مانعیت مال مانع این زباد از حیوانات خاصه است لذا اگر شارع متصدی بیان حکم و موضوع با هم باشه موضوع محدد باشه موضوعات صدقی نیست عرفی نیست به تشخیص مکنده نیست ایچه اعتباطی مکنده نداره میگن حکم ذاتیه مثلا در حدث اکبر همینه شارع هم مانعیت حدث رو میگه هم مشخص میکنه حدث به چی میگن قضا احدهمای و محدث هیچ حدث رو اثبات نمیمون به احتمال قوی خیلی از شاند محتفر بشه چیزی نبونه وقتی میگیم یک حکم یعنی چی؟ یعنی موضوعش هم مشخصه موضوعش شاره میگه شاره گفته وطن به همین میگن غیرین وطن نیست قضا وقتی شاره وطن رو مشخص کرده باشه ما نبیتونیم قائل به تعدد وطن باشیم تعدد وطن دیگه من هم چه یکی چه دو تا چه ست ولی اگر قاعد شدیم برنیم که وطن عرفیه انسان هزار تا میتونه وطن داشته باشه. پس برای این ابهامات از احکام برداشته بشه ما خودمون به این نتیجه برسیم که آیا یک شخص میتونه تا وطن داشته باشه این علم مبناست وطن آیا موضوعش محدد اندشارهه یا ملغای به عرفه به تشخیص مکندت به زواهد کدوم شه به این دو تا تفکیر فاعل شدیم میتونیم به حکم برسیم ولی یه تفکیر نشیم نمیشه زیرا این یه تفسیر نویه اینطور نیست که بگیم ذاتی یعنی نجاست متقوم به ذات فرشه و این چه فرقی با هر داره که متقوم به ذات زیده ذاتی و انوانی استلاحه از به این بیانیه گفتیم حالا این نهایت چیزی بود که تا الان تونستم بنویسم ولی حالا شاید رفت رفت باز تعمیرات آسانتری تفصیلاً به لبات بتونیم بنویسیم تا مشکل اساسا حل بشه تا برای که ابهام داره برای اونایی که ابهام نداره جزا نوشتیم این اشیای که احکام ذاتیه یه هست خاصی قایل میشیم به احکام ذاتیه جزء قضاایای خارجی حساب بشه المسانخت للاحكام للقضايا الخارجیه که تو صفحه 24 نمیشه مسانخه با قضایای خارجی است باشه اجمال یه چیز تصوره اجمال اساسا اصلا مهم نداره مقام تشریح با اجمال سازش نداره یعنی ما هیچ تشریح رو نمیتونیم مجملا مجملن بلحسیم. یعنی بگیم اجمال داشته نصوص اجمال داره نمیشه تشریح با اجمال نمیسازه. ما اهمال داریم اطلاقم داریم ولی اجمال اعتباری یه طرف شاره نداریم اجمالش به خاطر همین عوارضه ما چون مثلا مبنای تفکیکی بین انوانی و ذاتی نداریم اجمال حاصل میشه چون تفسیر ذاتی و انوانی رو نمیدونیم برامون مجموعه چون ما وطن رو نمیدونیم ماهیتش چیه اجمال داره روایاتش و اگر ما تشخیص بدیم ذات انوان کدومشه اصلا ایم، اجمالی کار نیست و از نظر اصولی هم عدله مجمله رو ما رفظش کردیم یعن اجمال در عدله نیست ابدا نیست چه در مقام ثبوطش و چه در مقام اثبات اجمال ما نداریم اجمال آرزیه عارض بر به خاطر اینکه بعضی از مبانی منقع نمیشه یا تو ابهام میمونه وقت اسمش میذاریم اجمال ولی معنا نداره شار در مقام تشکی مجملا یه چیزی رو بگ تعارضات رو ما بایین با این چیزایی داریم میگه برای این تعارضی پیش نمیاد یعنی شما اگه بعد یه مبانی رو اتخاب کنیم تعارض ببین وجود داره کسی نمیتونه انکار بکنه ولی این راه هم که در کتاب های تعارض می نویسن راه حلی میگن مثلا خود به ما شهر و بین خوب پس چرا همه عرص نکردن باز چرا اختلاف شده <تصفيق> اگه واقعیت داره خب همه عرص میکردن پس چی عرص نکرده به اینا واقعیت ها رو نمیشه این کرد یه چیزی میگن ولی عمل نمی کنن. اینا میگن اگه تعارض شد بین مشهور و غیر مشهور خود به مشته بین اصابه اگه این توری باید تو 1400 همه به همون مشهورات عرص میکردن خب عرص نمیکنن؟ به اینکه که یه دقول نداره این ولو در مقام اصولی میارن بحث میکنن یا راه دیگه برای اینکه تعارض را حل کنن تعارضات راه حلش اینا نیست به الا میشد انسان بگه با این تا راه و طرقی که ذکر شده ما تعارضات رو میتونیم حلش کنیم و حل نشده تعارض تا الانم حتی اتفای اختلافات باباها بیشتر از گذشته است میگن که آرزی میشه دیگه ما چون نمیتونیم تا رو حدش کنیم بگیم مهیم منه نمیشه که مهم. اجمال عرضی فایده ای نداره اجمال ذاتی که روایات نداره چون هر سخنی خودش یه مقهومی داره منطوعی داره اجمال عرضی عرضیه که به خاطر این که براش پیدا نمیشه میمونه ما غیار میکنیم اینا رو ت و میشه که مبانی تعارضات تا نباشه یا جمع میشه یه جمع عرفی یا سر از یه تفکیک این طوری در میاد ه بعضاز روایات انوان رو گفته یه حکم متغیر داده خوب احکام متغیر ببین اگه شما قایل شدید به مبنای انوان و اینکه احکام انوانیه متغیر به طبع ملاکات مصالح نمیدونم اهم و مهم و امثال اینهاست خوب یقینا هم باید فرق بکنه یقینا هر سایل هرچه میپرسه جوابش باید غیر از اون باشی که قبلا گفته بودن و انوانی متغیره ما چرا بیایم بگیم انا چرا با هم نمیسازه نهباید هم بسازه عل چون حکمش متغیره چون ملاکاتش فرق داره تا به مساله اشخاص ظاهر مهم بوده یه موقع بیان از ادالت امام جماعت بپرسن امام حکم به صحت بکنه بعد از ادالت امام جمعه بپرسن حکم به بسلم بکنه خب این تعارض داره خودش تعارض داره یکی ذاتی یکی انوانی، تعارض کجا و, و خیلی از دیگه فرصت این نیست که شما حالا بتونید به وسائل به این نهر امیر مراجعه کنید اینا رو بتونید در بیارید یعنی اینه یه مبادی میخواد ولی حالا میشین رو گنمان قواهدی بپذیرید تا اینکه بعدن حل بشه حالا بله. تو اون احسان اینجا میخواد سرگزه بردیم و از اون موضوع هم از باب بیان بیان شده حالا ما این بخیل شده شده شده کنیم که این در ت همه اینا که داریم میگیم اینا یک طرف تو صفحه تو صفحه دمیست و یک نوشتیم 22 دو هم نوشتیم آخر همه اینا باید به یک ذوق فقی برسه آخرش یه زوق میخواد یاد فن فن مبتعی بر یه زوقیه ممارست میخواد این نیست که ما حالا بیان بگیم باز این چار شاخه میشه آدم یاد بگیری نه اینا فهمیه فوت و فن داره فوت و فهم در ممارست میخواد این شنا میمونه حالا شما بگو چطوری شنا کن فایده نداره. فن شنا یک چیزه یک چیزه مثلا اعتقاد به اینکه انسان خفه نمیشه همین که بگه خفه نمیشن بید میشنه شنا کن و دیگه به پایین. یا رانندگی هم همینطور اینطور یه فنیه فن و خیلی از فنون دیگه این هم مثل اون فن این علمی نیست یعنی علم اصول که میگیم این تسامحه هست و الا اینطوری باشه که عملت و که بهتر میکنن به بالا خودشون اونه باید مشتهت باشه یا اونا که با سیدی میخونن درس رو را با رادیو میخونن درس های خارج رو گوش میدن باید مشکلای باشن یا نباشن چرا نمیشن به خاطر اینکه اون نهایتش علمه ولی این فنه فن میخواد شما وقتی به رو با مراجعه میکنی یه زوقی میخواد با اون ذوق تشخیص بدی مستند کنه به این ذوق فقهی از ممارسات به دست اومده که بین احکام فرق بذاری بعضی یه ده تا موضوعاتشو به خود شما بعضی از موارد هم کم‌شمار مشخصه موضوع ولایت بر باکرهی رشیده این ذات شاره به این اجازه نمیده تعدی بشه به عموی این یا به مادر دختر و امسال این ها بگه مادر از پدر مهربان تر و نمیدونم بهتر دخترو درد میکنم از این حرف هایی که میزنم مال ذات شاره موضوع مشخص کرده لی سلها ها امرون یعنی هیچ احدی دخالت ذاتش هم مشخصه که خصوص پدره و سایر روایات که تسکیش بیشتر وقتی موضوع مشخص میشه حکم مشخص میشه سر از یک حکم ذاتی در میاره واقع احکام ذاتی بعضی از موارد سر از تفخیص در میارن مثل حدس بعضی از مواردم سر از الزام از از در میاره مثل تسکیه حدس نهایتش باید منطقی بشه به یک ذوق فقیف که از ممارست حاصل میشه بدون ممارست نمیشه قام نهایتشنا رو بتونیم آسونتر بیان کنیم تصیل بشه راحت بشه تعبیراتش رو تغییر کنه ولی نهایت با یه زوگی از خود شما باید باشه دیگه شما باید فردا نظر بدید وطن به چی میگن وطن یکی موضوعی که شاره میگه یا عرف میگه یا خودم تشخیص میدم یا در موارد اقامه اشتر حتما باید این ده روز ما از نخوریم یا نه من میتونم باز برم جایی دیگه برگردم دو ساعت و چهار ساعت اینا موضوعیت نداره این رو من از این مبانی باید در بیارم دینه نمیشه ولی هم بدون مبنا بخواد این به بپذیره جزمه بهش نداره و خیلی از مساعده دیگه لذا شرعیات و مجبورات شرعی تقسیم میشه به دو قسم شرعیات غیرتعب و شرعیات تأفدیه محضه که در شرعیات تأفدیه محضه هم حکم مشخصه هم موضوع مشخصه و این در شرعیات غیر تأفدیه شارف از برخ مخفته برخ چیه؟ شرعیات ادالت امام جماعت حالا کی آدل باشه کی نباشه خودت تشخیص بده عرف بگه صدق و عرفی بیاد مذهب صدق و عرفی و تشخیص ما در احوام انوانی است. اگه حکم عنوان رفته باشه از احوام انوانی باشه اونجا میگن مثلا صدق عرفی هست ولی اگه حکم ذات رفته باشه میگن آقا این خمر حرامه خمر حرامه حالا به خاطر اسکار بعد میگن یه خمری ازکارش رو گرفتن اسکار نداره. یا برای این شخص اسکار نداره این حرام یا حرام نیست. در خیلی از تعبیرات شبیه این میاد که عرف میگه این خمر. ما کاری به عرف نداره. در یک حکم ذاتی کاری به عرف نداریم. عرف بگین عرف بگین این مسکر است. عرف بگی, بگی این خمره. عرف این فقای. اصلا درسی به عرف نداره. عرف میگه این قمار است. عرف میگه این شطرنج عرف میگه چی؟ ما کاری به عرف نداره. ادا خیلی از نوشته ها در عادی عادی عرف غیر عرفی هم این هم. این با عرف اصول ما نمی سازه. که ما بشینیم یه دکمه ای رو بزنیم هرچی در مورد عرف هست بیاد جمع کنیم کتابش کنیم این نهایت بیسریقی میشه. میشه عرف اینجا نظر نمیده ده بر برای عرف نیست مجالی برای تشخیص نیست الان حدث هیل برای زن یک حکم ذاتیه یا انوانیه حتی نسبت به زمانش زمانش در مواردی که مستقربه میشه این ایام متردده رو اولش رو حیث قرار بده آخرش رو حیث قرار بده چیکارش کنه اگر از احکام انوانیه باشه از این جهت خودش میتونه بگه من الان که میخوام برم عمره حیث حساب نکنم بعد رو حیث حساب کنم یا الان رو حیث حساب کنم وقتی وارد عمره میشم حیث حساب نکنم دست خودشه دیگه نیاز به قرص هم نبین چرا قرص بخوره الان رو حیث حساب کنه وارد مدینه میشه مکه میشه استحاز حساب دست خودشه به خاطر شما باید شده این حق نسبت به زمانش انوانیه زمانش مهم نیست شما میخواد خیلی خیلی حیستتون منظم باشه عددی وقتیه باشه برا خدا فهم نداره میخواد مستربه در نهایت استراف باشه عددش و وقتش اونم فرقی نداره نسبت به زمانش هیز حکم ایمانی داره زمانش مهم نیست وقتی زمان مهم نیست در ایام متردده برا زن مستربه میتونه اول خودش حیست حساب کنه میتونه آخر به هم پیش نمیاد نزدیک همین فطوا رو فوق عامه در خیلی از فروع قائل میشن به اینکه به نظر خودشه میتونه اول روی سرال بده میتونه آخر رو و تو این مبحث باب احتیاط حتما اینو مراجعه کنید در قسمت یک علم اجمالی نسبت به تدریجی امور تدریجی نسبت به امور تبریزیه میگن این مهمانی داره از دار یا نداره یکی از نظریات همینه دست خودش میتونه اول رو حیث حساب کنه میتونه آخر رو حیث حساب کنه پس داریم نظیرش داریم و محلش هم مشخصه منطقه یه بقدار تفخص میخواد و تعمل در اطراف این کلمات میخواد که اینا رو به چه مرنایی منود بکنیم که نپره از ذهن ما نپره اگرم در باب اشتغال تو همه کتاب های اصولی قسمت منجزی علم اجمالی نسبت به تدریجی و همیشه از حلقه دو شروع کنید اینا رو پیدا کنید بره شایستر اینا رو داره دیگران هم دارم. ولی خب یکی از مسائلش همینه زن چطور میتونه اول رو حیث کنه بعد رو. هید. بعد به دقایاتشم وقت داشتید باز نگاه کنید به امرش امام فرموده موقول به خودسن. این یعنی این معنی که داشته دیگه موضوعش مشخص نیست یعنی مهم نیست برای شاره اول حیز باشه آخر حج باشه. لذا یزنی که استر... الان خیلی بیماری‌های خودی مرموزی الان اومده مریضی های خیلی زیادی یکی از مریضی ها استمرار خون در زنهاست که حالا سیل نشمارو سیل نبره بوبه. هایی که گرفتن به خاطر که میخورن به خاطر این چیزایی که به دکترها گوش میدن و به مشاورا گوش میدن زندگی نیز. بعد استمرار خون در زنها، این استمرار رو چطوری حلش بشکنم و یکی وجهش همینه میگن به اختیار خودش اول هیست سار آخری یا آخر سر. سر روز اول رو یا سر روز آخر هفت رو. روز اول رو یا هفت روز رو. دارن اینطور مباحث هست در شرح هم خوندی خودش اولم اول در لومه در داره در دروس داره در ذکرا داره خب این به چه مبنای موکر کنیم قیل از مبنای اینوان که امرش موقول به خودت. شخصی به اعتقاد اینکه این امام جماعت عادت بوده نماز خونده بعدا دیده این فاصله فاصله چی بگیم؟ بگیم باطل یاده کنه یا نه؟ یاده نیمه درست درسته درسته از درست هم درسته به خاطر این نظر خودش مهم بوده و نظر خودش برای ادالت شخص بوده دیگه چرا یاده کنه؟ و سایر احوال لذا این دو قسم شرعیات پیگیری بشه بعضی از شرعیات دلیل تعهدی این تعهد خاصی درش نیست نسبت به موضوع ولی بعضیا نه نسبت به موضوع شاره حساسه این موضوع این حکم داره یعنی وقف مال ذات رقبه زمینه لذا شما بعد از پنج سال هم که بگذره این زمین رو نمی‌تونی آشکارشونش کنی اخراج یک ملکی از اون انوانی که داشته مسجد بوده ما بیایم بگیم نه چون کن نیاز مسجد رو سرش پیدا کرد ما همه نداریم یا بیایم براش فازلاف بکشیم دستشویش کنم بگن این طبقه دبطی اون طبقه نداره نه به ذاتش میخوره دوایات وقت هم همینه خصوصا ماکانالله فنال از ها. خصوصا مسجد حالا بعضی از موارد وقت عناوین میشه خب اونه میشه قاعده به تغییر بشیم عدن تعدید بشیم ولی در امثال مسجد نمیشه در امثال مسجد نمیشه قاعده به عدن تعدید بشیم به خاطر به ذات زمین کرده به هم همیشه مسجد باقی میمونه این دو قسم از احکام از عنوانی و وس ذاتی مقداری روشن شد بک انوانیه یعنی آسونه چرا آسونه؟ چون موضوعش در اختیار من و عرف و امثال ما هست ما تشکیزیه الان روایاتی که داره در بابه وطن محفظه سوحانی در سلات مسافرش مراجعه کنید که از بهترین کتابهای سلات مسافر همان کتابی که محفظه سوحانی داره کمانگی کتاب لجارش هم خیلی عالیه بحوس و پلفق یه بحوس و پلفقی داره که چاپ شده کتاب اجاره سلات مسافر و بعض یه دیگه در سلات مسافر داره که خب شخصی میتونه یه جای وطن اتخاذ کنه که یک ملکی باشه براش و شش ماه درش ساکن ما این روایت با چطوری حلش کنیم این روایت با هیچ کدام از تواهفه روایت نمی سازیم ملکیت و شیش ماه سکونت و باید از مبنای انوانی و ذاتی نمیشند. یعنی بعد برای این شخص داره میپرسه که موجر نیست. مبنای بگیرین اینو. بعد متغیری اینو... بنای بله. یعنی که برای این شخص اینطور فرض. ولی اگر ذاتی باشه، یقینا تعارض داره با خیلی از روایات. اذا این میره که نه. این میره گنار بقیه روایات میمونن یه مبنایی برای فهم روایات ما میخواییم در یه حد خیلی بالا و امیر امیختر از این اصولی که فعلا متداول در بین طلاب و فوزنلا امیختر از این میخواد. که ما ابهامات رو به حلش کنیم اگر باید شدیم اینکه شرعیات بد دو رتبه است رتبه یه و سختتر بعضی از احکام موسونا به خاطر موضوعش ملغات به خودمون بعضی از احکام سخت به خاطر موضوعش هم اشاره مشخصه و اینا رو قید قابل انکاره کسی نمیتونه بگه نه اینا رو نداریم و تمام وسایل شیعه امرش های مدار همین دو تاست بعضی از روایات رو میگه بعضی از روایات اونو میگه و با این ذهنیت ببینید اصلا تعارضی بین روایات ما نداریم در این هفت بیا اشتار سندگی بکنیم و اشتار دلالی بکنیم و بیاییم بگیم در یک دواییت میبینید از امام علیه السلام چیزی برسن پرسیدن حالا چیزی که در ذهنمه از پیامبر از امام اسلام در رابطه با قاعده جمع اون مثلا چیزی میپرسه پیامبر نفت میکنه یا نه این نداره نداره. بعد میگن آخه این طوریه باشه باششانه یعنی تغییر اینطوری، در یک روایت دو هست آدم بزن این دیر قابل قبوله مگر با مبنای اینها و اله باید بگیر این ضد و داره دیگه این روایت مستبتن دو حکم ضد در قاعده ی جب مراجعه بشه القواعد فقیه روایت اونجا بوده از آیشه از ام سلمه در رابطه با حکمی که نسبت به برادرشه. با این مردم میشه خیلی از چیزها رو تهی کرد میشه تهی کرد منطقه معروف به اینه که ابهامی در اطرافش نمونه لذا یک ذهنیت شفاف پیدا میشه به تفسیل انوان انوانی یعنی چ یعنی موضوع شفتی به شعاره دیگه نده ذاتی هنیچی؟ یعنی, یعنی از موضوعش هم شعاره میده حکمی که شاره بگه موضوعش هم مشخص بکنه قضیه خارجیه لا یتعدا منها الی علاقه تا تعبد محضه ولی در این معنی این طور نیست من یه طور تشخیص میدم شما یه طور تشخیص میدید الان نسبت به سرات مسافر چقدر اختلافه چقدر اختلاف هست یعنی واقعا این اختلافات هست وایدم باشه، برای چی باشه؟ ما اینا رو میتونیم حلش کنیم. لا, لا شک, شک, شک. یعنی شک. شک, شک, شک. جزء مشهوراتی که لا اصل هر چیزی اساسی بنابراین تفصیل بین عنوان ذات خیلی اهمیت داره. و اشراف فوق العاده به فکر میاره براتون یعنی ما اگه تشخیص خیلی از چیزا نباید قبول بکنیم خیلی از چیزا اساس نداره بعضی از چیزا هم که اساس داره تفسیرش بر ما مبهد یک اشراف میخواد به تفسیرش به مسادیقش به اون اصطلاحی که در استعمال میشه یا خیلی اهمیت داره بنابرای یک مقدار احتمال میدم آسان شد مسئله ابهام از خیلی در ذهنها رفت وقتی میگیم انوانی و ذاتی اون انوانی که تو از هست خیلی 199 آوردن چهار قسم انوانی و ذکر کردیم نه هست منطقه این بحث ما حاکم بر همه اپاسه بکم انوانی خب همه بکمان انوانی هست. هر حکم مترتب بر انوان دیگه نمیشه بگیه بر انوان نیست بر سنگه بر انوان دیگه. بعد عنوان خودشه چیزی نیست همیشه عنوان یا فرش یا دیوار یا انسان یا حیوانه غذا هم ذات هم حیوان باشه این کبسی که بین این عنوان و ذات یعنی چی یعنی بعضی از اح اون موضوعش به بشاره نداره بعضی از اها موضوعش هم اشاره باعث بگیره این مثالی که گفتم به خاطر اینکه به شناخت این الموهیریت دلالت داره این مفهوم ذاتیه برای این که این چون موضوع که این ها... چرا؟ من به کشف دارم میگم یعنی حرف بی مراجعه زدم شما مراجعه کنید هده قایم به زاده در نصوص اینجا نوشتم من نوشته هایی نیست که کسی ببینه بخواست به من ایراد بگیره یا بخنده مراجعه کردم نصوص اینطوری میگه و مرحوم آقای حکیم اصلا تصیح کرده که نصوص اینطور میگه محقق خداسانی آورده و ردش نکرم روایات محدث میگه مال این شخصه مال ذاته مال انوان نیست بنابراین موضوع این حدست مشخصه شخص معین خارجی باید باشه بابی هم که فساید میاره مستند به ذات یعنی شخص مشخصه این شخص مشخص باید بگیم محدث هست یا نیست حالا نسبت به این حد از این طوریه. نسبت به استحاضه و حیز و نفاظ یه اختلاف دیگه ای هست قبول میکنی نه این من مراجعه میکنم چون طلبه ها خیلی مستعدن و من قبطه میخورم و میگه کاش در سن شما که بودم منم اینقدر ذهن داشتم یا مباحثه خوب داشتم نداشتم. من واقعا قبطه میخورم بخاطه که از اذهان افکار خیلی بالاست در حد محقق سوانی مجبورم دارم مراجعه کنم بعد بنویسم و اعداد نمیشه بدون مراجعه هم به ابوابش در وسائل هم به فتاوا از معاصرین هم به جواهر و اگه وقت پیدا بشه به ذکر به دیگر کتب و در تمام کتب امامیه من بیشترین اعتقادم به ذکر شهید در وقتی وقت پیدا کنم اونم مراجعه می بارن. الان از از این تقریبا یک اگر با بحث هم جمع بشه یک پل مخاطره لزوم بین تعین موضوع از اشاره با اثر شدن علم تحلیلی در موضوع اگر این بیاد علاوه بر هم پل اما اگر این از بعد اینها میشه این بغیا رو اما باید می که چه بسا شارعه یه حکمی ذاتی افت کرده باشه اما تا همون جایی که ذات یه موضوع بر ما سعیل کرده همون موضوع رو به به علم اجمالی هم افت کرده باشه یعنی اونوانی باشه احتمالش از سفی سره که به این بیان ذاتی یعنی شارعه اومده بر ما موضوع مشخص کرده خوب. اما همون موضوع رو به نحوه علم هم از ما این اینا با هم جمع میشه مشکلی پیش نمیاد تا به این تحقیق. ما در و داری حتی اگر چوچ ذاتی بشه چند میلیون بنا بر این علم اجمالی مجاز باشه اما اگر در مدلی بشه این نباشه اینکه رو این داشت اومد زومه به اینه اینکه خبرتیو موضوع داخل اینکه علم نحوه وقتی موضوع اصل بشه این کلو بزنیم اون وقت ران اما اون کلو نزنیم به طورت جمعی شد یعنی محالی اینه احتمالش هست این نظریه ولی خب اصل مبنا رو همینه که علم مالی اعتباد به ذاتیات پیدا نکنن اگه ذاتی بود علم مالی منجزش نباشه از مبنا رو کنیم بفرمان از با ما رو میگیریم در واقع اون سرکت شار اومده ماهیت موضوعشون خود شهاره تقیی کرده اما یه بار میگیم که افراد اون موضوع و میگیم که این خیلی نظر میسید و دو تا معنا از ذاتی میشه وقتی که ما میگیم ذاتیه یعنی میگیم که خدا برای ما موضوع و ماهیتشون مشخص کرده اما این لزومت به این معنا نیست که اصلا فند اون ماهیت را چرا؟ را گفتم ببین مصانخ هستون لبقظایی خارجیه یعنی شعاره فردشو مشخص کرد یه بشته می آم احتمالش هست ولی نه این تمام این دردها رو بستیم این ها اصلا درش نیست که وقتی میگیم این ذات میره شار میاد موضوع رو مشخص میکنه نه ماهیت رو ماهیت که قبلا مشخص بود ماهیت همون عنوان دیگه ماهیت انسان همون عنوان انسانه قضیه خارجی گیر دی یعنی زید امر بک خالد اون بحثی که در اصول مساله می‌بینید مراجعه بکنید ببینید احکام آیا به تبایی تعلق میگیری یا به افراد. به تبایی تعلق می‌گیره ما اون رو در کفایه قبلا هم بحث کردیم گفتیم همین انوانی ذاتی اسمش رو واسه شما به ماهیات تعلق میگیره یا به افراد اینطوری غیر منطقی که اول داورد مطرح کرده و دیگران تغییر یه حرفیه انسان بسین که بشین ما یه جا برای ما فرانسوی حرف بزن هیچ چیزی نمیفهمه اصلاً ولی نه اینو میتونیم فارسیش کنیم برج به ماهیت تعلق میگیره به توایی تعلق میگیره یا به افراد یعنی آیا به انوان تعلق میگیره یا به زمان تا قابل فهمش. همون مزرده اجتماع هم اندنه ایشون ایشون مثلا چند نظر رو تنسر کرده که ها به می اونجا حالا شده در که احکام به انافیی ترده در جهاز نخاطیجه به کلی دیدون اجتماع همدان یه تذکری میتذریم اشگاهی ها میگن از مجله عناوین به مصادر تصدیق می کنه بله اون صفحه از... اونا هم اون رو ببین اونم حرفه موقع... او بود آره مطالب ایشون چیزی چیز بود که ما همیشه هي اجام میدادیم به وسیله این ببین ایشون ببین در مقام یه واسطه سازی بین معالم و کتابی هست یه چیزی بنویسه مفتی هم نیست مفتی نیست ببین گیرها هاست مثلا یه راننده میبینه یه راههای مثلا سرقس رو میره میبینه خطرناک اونجا راه گرمتا رو میره میبینه خیلی خطرناکه ان همه تبلیغات ندره جاده به ان خطرناک انها نمیدونن مذفر نمیدونه چون مفتی نیست مفتی میدونه که خطرات چیه لذا اون را این قیاس نکني صفحه 199 فرمایشات متفرد من آوردم 2 تا همون ولی حالا تقریبا همه اونم اومده صفحه 199 که اهکام مرتب بر عنوان میشه عنوان مشیر داریم طریق داریم موضوع داریم امثال بس ما آورده اسم پنجمش ها گفتیم بحثینه و چون فرصت هم نبوده دیگه نتونستم جدا بکنم یه های نوشتن ولی خوب جدا از اون 4 تا ها که اون تاست و شریعت ما این دو قسم احکام رو داره ولقد اجاد فیم و افعال المتعله و سبزهاری در نبراس و خدا بهترین کتاب در اصلاح بخون صفحه 399 از این کتاب این تصاحل و تسامحی که در دین میگن این همه مبنای انیوانی وزادتیه فموده الملة السمحة الامر سحلت الملت السمحة کم من خطوب سعبت قد زللت لیکن نماز السمحو زیقون متصر و السحلو کیفز السحل سحلو سحلون ممننه شریعت ما سحل ممننه سعب مستصعب داریم سهل ممتنع داریم بنابراین اینطور نیست که باید خدا فرق بکنه بعضی از مواد آسون آسون میگیره بعضی از مواد هم سخت سخت میگیره سهل ممتنع. صفحه 3199 از این که مراجعه کنید بخونید و تمام اشعار نبراس الهدان نبراس نبراس الهدان نبراس یعنی میزان دیگه ترازوی هدایت از شار فقه خیلی جملات خیلی خوبی داره این یه قسمتشه شریعت ما دارای تسامح و تساغله تساغلش همون ترخیصه تساموهش سماحت نه این سهولت باشه همون الزامیاتی که در نهایت تکلیم یک مکننده برخواه داده میشه کردنمیشه واقعاً رو پیدا کنید برش کتابش مال انتشارات بیدار و می‌تونید تو مسافرت کتاب رو و بخونید سر سفره بخونید اشعاری داره خیلی نام.